درس بعدی شما مواد او حفل مبتده وجودن جاگاه هایی که مبتدا وجوبن حصف میگردد جاگاه هایی که مبتدا وجودن چی میگردد؟ حصف میگردد الامثله خب شما اگر دقیقی در امثله بفرمایید میبینیم چار گروه از امثله وجود دارد یعنی اینکه که جا مبتدا وجوبن چی می شود؟ البته بعضی از کتب جای پنجمی رو هم ذکر می کنند ولی خیلی از کتب چهار جا رو میارند و و قطر ندا، استاد سهل مواضع حذف مبتدا وجوبی رو ذکر نکرده است. مواضع حذف وجوب مبتدا رو ذکر نه در شرحش و نه در متنش. خب بریم جلوتر امثله گروه 1 نعمل فاتح صلاح الدین. اگر یاد مبارکتان باشد در درس نعمه گفتیم بله مخصوص بالمده می تواند دو تا اعراب داشته باشد اگر ما خبر مبتدا حسابش کنیم که خبرش ما قبلش است ولی اگر خبر حسابش کنیم اون موقع دیگه مبتداش وجوباً چی است حس فست نعم الفاتحه نم فعل ماضي مبني على الفتح فائلش هو فاعلش هست صلاح الدين خبر هست پس مبتدا کجا رفت عجبا هست در این اعرابی که اگر ما به این این اعراب رو بهش دیگه مبتدا وجبا چه هست هست هست نعمه الام اسماء بنت ابي بكرن بئس الخلق خلق الوعدي بدترین اخلاق چه هست خلاف وعده انسان رو زجر می دهد پشبردهش می گرداند روحش را گل هایی که آب به آنها نرسد گویی که وفای به وعده آبی می ماند که روح را چکار می کند تازه می گردند ثباتون فی شدتی اما نه امثلی گروه دوم برویم اقتدی بعمره العادلو اقتدی فعل امر هست ناقص هست مبنی بر حس حرف هست حرف الله هست فائلش انته مستتر وجوبن بعمره جار و مجرور چون غیر منصرف است. علامت جرفت هه العادلو میبینیم صفت عمر هستا ولی صفت بایده میشه چه باشد؟ تابع موصوف باشد ببینیم عمر مجرور هست اما عادل چه هست؟ مرفوع پس همچونین صفت هایی که به عنوان صفت نمیان یا برای مدح میان یا برای ذم یا برای ترحوم این عادل اومده تا عمر رو چکار کند؟ مدح کند این نوع صفت ها بدانید که اگر اگر صفت عمر بود باید اعراب عمر رو می گرفت پس خبری وجود دارد و اون چه هست؟ اون این هست که العادل خبر هست و مبتدایش حجوبا چه شده است. حصف کردید است که در قوائد به خوبی بیان میدارد اجتنی باللعیمه الخسیسو تصدق عل الفقیری، المسکینو ببینید اینجا نه ناآورده است که فقیر رو وصف کند در حالش داره ترحم میکند میگه صدقه دهید بر فقیر بیچاره را یعنی ضرورتی نبود که ما این صفت رو بیاریم ضرورتی نیست که ما بیاییم موصوف رو وصف کنیم بلکه به نیتی دیگر این کلمه رو چیکار میکنیم میآوریم گروه شمار سوم ثباتی در شدتی، عفون و سعی، صبرون جمیلان. شما دیدید که این سه جمله با مصدر شروع شده بودند. با چه شروع شده بودند؟ خب، در قواعد می فرماید در قواعد به خوبی می‌فرمایند که یکی از جاهایی که حذف مبتدا وجوبی است زمانی که مصدر نائب فاعل مسدر با مصدر شروع شود که نائب فائل فعلش باشد که الان توضیحش می‌دهد فی ذمتی لا لعنا رداء الكسلی فی اونقی لا ابغض كل جهدی فی اونقی لا اكرمن الغریب چهار موزه میبینیم که مبتدا وجوبا حذف شده بیایید روی قاعده پنجا و که در چهار قسمت بی با جیم دال چارجا رو توضیح میداد یجیبو حصف المبتدا فی اربعت مواضع واجب است حصف مبتدا در چهار جایگاه <الف> ذاکان خبر مخصوص نیعم و بهث زمانی که خبر مبتدا مخصوص نعمه و بهث باشد مانند نعم الفاتح و سال سه مثال گروه یک که توضیح دادیم دیگه الحمد همه همهتون فهمیدید. اما با اذا خبر او نعتن زمانی که، خبر اون مبتدایی هست شده نعت باشد چه باشد خبر خودش نعت باشد. الادل، نعتی باشد مانند العادل الخاصیس المسكین ولی چنعتی مقطوع نعت مقطوع نعت چه شما می بینید که در ایران از ما قبلش پرایم می کند یا نمی کند می کند یا نمی کند نمی کند, نمی کند. للمدح این نعت برای مدح اومده باشد مانند؟ اقتدی بی عمره الادلو او او یا برای زم آمده باشد ماننده اجتنی بلعیم الخسیسو او اترح یا برای ترح آمده باشد این نهر ماننده تصدق على الفقیری المسکینو پس العادل الخسیس، المسكين خبر هستند که مبتداشان چه هست؟ حجوبا هست زمیری کشنا؟ متناسب با جمله چکارش میکنید؟ مقدرش میگردانید بله اما قائده جیم اذا کانه میگم اذا کان خبرهو مصدرن و سومین اینجا زمانی که خبر اون مبتدای محزوف چه باشد؟ مصدر, مصدر باشد نائباً انفیالیهی مصدری که نائبه فعلش باشد پس اگر شما این راهش ساده هست دقتی تی اگر شما دیدید مصدری منصوب بود؟ و موقع میدونید دونید که این مصدر خبر نیست این مصدر خبر نمی تاند باشد خبر جستی است مرفوعات ولی دیدید جملهی به همین سادگی مثل این جملات با مصدر شروع شده بود و مرفوع بود دیگه مبتدا حسابش نمی کنید خبری است که مبتداش چه شده است حصد شده است در شرح کتاب توضیح می دهد که مبتدا مقدر چه هست امری ثباتون فی شدتی کلمه ثبات خبر هست برای مبتدا محذوف و اون مبتده محذوف جاست ما مقدرش می گردیم امری کلمه امر کلمه چی؟ امر که مبتدا است؟ و علامت رفش تقدیری تقدیریست یا که هم مضافون اله هست و مثال های بعدی هم به همین شکل هست عفو و نواسون امری عفو و نواسون یعنی کار من چونین است که من چکار میکنن عفو و در مثال سوم هم که گفت صبر جمیل یعنی کاری که من در پیش میگیرم گیرم چه است؟ این است که صبر میکنم و صبر زیبا امری صبرون جمیل پس سومینجا زمانی بود که خبر مسغر بود دال اذا کان خبره مشعران بالقسم و چهارمینجا است که خبر چه باشد خبر چه باشد سرورانه مشعر باشد به قسم یعنی ما را بفهماند که این قسم هست قسم صریح نیست مثلا در امثله گروه چهارم دقت بفرمایید فی ذمتی لا لعنا الكسل ما از این لامی که از این لامی که بر سر فعل مضارع اومده است بر سر فعل چه اومده است میدانیم که خبر ما به ما میفهماند که این جاست just... قسم هست اگر دقت بفرماید فی ذمتی فی در ذمت من هست فی اونوقی قی من هست فی اونو قی من هست لأکرمنن الغریب که حتبان انسان غریب را چکار کنم؟ اکرام میکنم اینجا فی اونو قی نخشش هست؟ خبر هست فی ذمتی خبر هست فی انقی خبر هست خبر مقدم هست و مبتدا کجاست وجوباً هست بله مبتدا چی شده است وجوباً هست شده است که کلمه یمینون هست شخص مستقیم که خبر نمیشه یک میتانی چیزی میشه بعدا خبر میشه جان امین فی ذمتی بله این استاد مسئله ای رو اشاره کرد که آیا خود فیضمتی که جار و مجرور هست خبر هست یا آنچه که این جار و مجرور متعلق به آن هست مثلا میگوییم علی یون فداری علی یون فداری این سوال پیش می آید که آیا علی فداری خودش خبر هست یا علی مستقر مستقرون فداری که اینجا ما میگوییم فیداره متعلق به چه هست مستقران مستقر. اینجا دو نظریه وجود دارد گروه مستقیما خود فی رو خبر می‌دانند و گروه میگویند این متعلق به خبری است که اون خبر چه هست خب بریم جلوتر پس فی اونقی فی فی ذمتی اینها خبرهای بودن که مبتداشون وجوباً هست پس هس یمیناً فی انقی که از معنای جمله فهمیده می‌شد که این جمله جمله چی هست؟ درش معنای سوگند هست همین لامی که روی اومده از آغای ملا سهیل بله این لامی که لام قسمی که بر سر فعل مزارم اومده است به ما مفهوم را میگوید پس در این چهار جا در این چهار جا حصف مبتدا وجوبی هست اما در درس رعدی میخوانیم که چه جاهای خبر وجوبند هست